دوش وقت سهر از قصه نجاتم دادند و اندران ظلمت شب آب حیاتم دادند بی خود از شعشعه پرتوب ذاتم کردند باده از جام تجلی صفاتم دادند مبارک سهری بود و چه فرخند شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند بعد از این روی من و آینه وست جمال که در آنجا خبر از جلوه زاتم دادند من اگر کام ربا گشتم و خوشدل چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند خاطفان روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و سباتم دادند این همه شحت و شکر که از سخنم میریزد اجر صبری است که آن شاخ نوابتم دادند همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند قمع ایام نجاتم دادند